تأثر زلف تو در دست نسیم افتاده است دل سودا زده از قص دنی مفتاده است چشم جادوی تو خود عین سواد سحر است لیکن این هست که این نسخه سقی مفتاده است در خم زلف تو آن خال سیادتانی چیست نقطه دوده که در حلقه ج مفتاده ظلف مشکین تو در گلشن فردوس ازار چیست تابوس که در باغ نعیم افتاده است دل من در حبس روی تو ای مونس جان خاک راهی است که در دست نسیم افتاده است همچو گردین تن خاکی نتواند برخواست از سر کوی تو زان رو که عظیم افتاده است سایه قد تو بر غالبم ای عیسا آدم عکس روحی است که بر عزم رمی مفتاده است آنکه جز کعب مقامش نبود از یاد لبد بر در میکده دیدم که مقیم مفتاده است حافظ گم شده را با غمت یار عزیز اتهایی است که در عهد قدیم مفتاده است.